الله رحمان الرحیم چه باید کرد عنوان صحبت اینجا دست ما هست. از عزیزاز میشه گفت که این عنوان یعنی چه باید کرد شاید مهبری ترین ترجیبند همه انسان های مدرن جهان یا به خصوص اهل تفکر و کسانی که در فکر راهحل و نجات جامعه هستند بوده به همین دلیل هم حتی در قدم ادبیات، ما کتاب زیادی در تقییم دو نخی قرار داریم که تدرم این عنوان باید کرد نوشته شده که یکی از مشهورترین این باید کرد ها متعلقه به لینین رهبر انقلاب سوسیالیستی. جوروی سابق است قبل از اونیز لو تولستوی تحت همین عنوان کتابی نوشت و بسیاری دیگر قبل از اینها ولتر پیامبر عصر رونسانس اروپا همچین عنوان کتابی داره و در تاریخ معاصر کشور خودمون هم از جمله مشهورترین کتابی که تطوری این عنوان نوشته شد مربوط به دکتر شریعتی هست هر از این کتاب ها و این عناوین در اصل خودش و در کشور خودش با اسبانی، انگلوات و حرکت ها و جهیش هایی بوده و ها و فعالیت های قابل توجهی رو بدید و برده و گا سرنوشت جوابن رو تغییر کرده از یک داز گفتش که کل تاریخ تمدن چند هزاره اخیر جهان که به اینجا رسیده که عمری حدود دو سه هزار سال داره یک جریان واحد بوده از این لاز تاریخ تمدن چبایت کرد بوده این معنای چبایت کرد محتبای اکثر آثار بزرگی بوده که در قلمرو روی فرهنگ و مدنیات و دانش پدید اومده این اکثریت قریب بطفاق آثاری که تعلیف شده بر این اساس نمیشته شده که یک راه حل جدیدی یک راه نجات تازهی رو برای مشکلات در تاب و بمبست های بشر هر دوره ارائه بده حتی آثار کاملا علمی و فنی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای چه که کردها هدید اومدند حتی آثار تکنولوژیکی آثار فلسفی جامعه شناسی روان و ایدولوژیکی خوب خیلی آگانه به این مسئله پرداخت بدن بنابراین ما میبینیم از افلاتون که او رو از بانیان افلاتون رو از که از بانیان تمدن دو هزاره اخیر جهان در مغرب زمین هستند این تبایت کارت ها شروع شده مشبورترین اثر افلاتون یعنی کتاب جمهوری اصلا یک چبایت کرده یک مدینه فاضله هست یک آرمان شهر و یک نا کجا آباده نجات بخش رو پیش روی گذاشته تا به قرن نوزدهم هم همین فکر بشه به اشکال مختلف عمل کرده تا در مکتب سوسیالیزم و کلا رونسانس اروپایی این چبایت کرده ها دقیقتر تخصصیتر و جانش شده و پیروان بیشتری رو به خودش اختصاص داده و در این دو سال نخیر خب ما بینیم گروه ها و گردانهایی از متفکران و روشن فکران و فلاسفه و شپه فلاسفه در این قلم روگان برداشتن سخن گفتن کتاب نوشتن و تبلیغ کردند. و این تمدن چه چبایت کردی؟ در حقیقت میشه گفت در این دو قرن اخیر برمیگرد چبایت کرد به اوج و اشد خودش رسیده که این دوران رو تبدیل کرده به دوران حاکمیت ایدولوژی ها اگر میگهم قرن 19 و 20 قرن ایدولوژی هاست در واقع میشه گفت قرن چبایت کرد، های سیستماتیک تمام هیار و جدیترین و جامع ترین چبایت کرد. ها بوده که گروه های بشری رو و کرده که واقعا یک کاری بکنند برای نجات بشر از انواع در تا ها ورنجهای روحی جسمی اقتصادی سیاسی حکومتی و غیره هر دانش که از یک پدید و پاسخ به یک چه باید کرد بوده مثلا مکاشفات علم فیزیکی چه باید کردی به دردهای جسم انسان و بیماری های روان انسان بوده چه باید کرده های فلسفی پاسخهایی به مسائل روحی روانی و سرنوشت کلیگی بشر در جهان بوده چه باید اقتصادی سیاسی جامعه شناختی همه به نوع خودش پاسخ به مسائل سیاسی و اقتصادی بشر روی زنیم بوده و به نظر میرسه که بیستم و پایان بیستم این اوج اندیشه چبایت کرد رو ما شاهد بودیم که در قلم روی ایدولوژی ها به صورت چبایت های ایدولوژیکی و جهانی عمل کرد که مکاتبی مثل لیبرالیسم و سوسیالیزم دو تا از مشهورترین و جهان ترین این چبایت کردهای ایدولوژیکی بود که عمل جهانی پیدا کرد اما را به جای که الان هستیم و در این حال این اوجه چبایت کردها که در واقع بخواسته از مدینه های فازل و آرمان بوده خب ما دیدیم که در ده های اخیل رزن در این حال که برخی از مسائل بشر پاسخ داد به بسیاری از مسائل هم پاسخ نداد و بسیاری از مسائل رو لای انحل کرد و خود مسائلی جدیدتر و بمبست هایی شدیدتر و لاعلاشتر هم برای بشر پدیده بود بسیاری از موزلات بشر این روز دهه‌های ده های اخیر خود حاصل تلاش های باید کردی انسان مدرنی بوده که قبلن همچین مسائل و مسائلی رو بشر به این شکل پیچیده نداشت قفل مثلا ما میبینیم که خود لیبرالیزم دموکراتیزم خود اینها یک دورانی مدینه فاضله بودن ما امروز میبینیم که خود اینها از مصائب و بلاها و بدبختی های گریبانگیری کل جبامی بشری شدن کرد در مقابل نجات از این لیبرالیزم وحشیانه یا امپریالیستی رو سروی کرد یعنی یکی بس پیدنگاه بشریت رو از این لیبرالیزم و از این آزاگی نجات بده سوسیالیسم من خودش در شوره ما که سوسیالیسم یک پاسخی به یک چبایت کردی هزاران ساله بود برای برداری ادالت و خودش تبدیل به شدیدترین نوع شقاوت و ظلم و خفقان شد و در خودش فروپاشید. خب از این منظر میشه گفتش که گویا تلاش چبایت کردی بشر در طول تاریخ خود نه تنها هیچ مسئله ای پاسخ نداد و بلکه خودش باعث تشدیل و تعمیق مسائل و مسائل و بدبختی های بشر شد تا جایی که اصلا صورت مسئله فراموش شد یعنی چنان مسائل و بدبختی ها تعمق استخان و روح و روان بشر نفوذ کرد که اصلا صورت مسئله فراموش شد که اصلا مشکل چه بود آخر؟ ما امروزه موزه به نظر میتونی که در این عرصه ای داریم که انقدر بدبختی ها و مسائل زارانسال بشر عنیق شده و چنان این از آبها شدید شده که اصلا انگار مغز و شعور بشر را از کل انداخته که حتی کسی دیگه چه باید کرد رو هم به زبان نمیاره حتی این واژه این عنوان حتی انگار فراموش شده که چه باید کرد از یک این یک نظر شخصی خود من از منظر معرفت دینی است. نظر من کل تاریخ بشر را از آغاز تا به امروز از یک لحاظ میشه شه کرد به دو مرحله لازم معرفتی دیر مرحله امری به معروف و مرحله نهی از منکر این امری به معروف و نهی از منکر لازم لفظ و منطق خودش به نظر من به با چه باید کرد و چه نباید کرد امروز معروف یعنی چه باید کرد نه یزم کرد یعنی چه نباید کرد چه باید نکرد این مسئله علاله حکمت اسلامی هم قابل توضیح است. در یک صحبت یک شما داشتیم در باره مسئله آخر زمان اونجا این مسئله رو به تفسیر صحبت کردیم روزی میدیم به اون بحث ولی خب یک بار دیگه اون بحث رو به طور فشرده مرور میکنیم که کل تاریخ بشر از آدم تا خاتم تا و تا به امروز و تا آخر زمان تا پایان جهان دو سیر کلی داشته یک سیر نزول بوده و یک سیر اروچ یا سیر سکوت. سیر نزول آن سیری بوده که انسان در طول تاریخ شده گام به گام و همان قلمروی خلقت مادی و جانوری بشر بر روی زمین بوده و نیز سراغاز نبوت ها و به خدایی بشر بوده و دوران مدنیت، اخلاق، قوانون و اکتصاب و آموزش بشر بوده یعنی قلم روی ام دوی بوده بشر همش به دست و فاز دوم تاریخ باشهر به نظر من قدم رو به نهی ازمان کره نهی ازمان کره این چی؟ یعنی حالا آن چیزهایی که به چیزهای چیزهای دسته گرده با سیف و بگذاره و بگذاره ازش دست بکشه همان چیزهایی به دسته گرده این به بیان من همان توضیح دیگری از سیر نزول و سیر اروجه سیر نزول یعنی انسان از خدا جدا شده آمده بر زمین سری اروج یعنی دو مرتبه بایستی به سوی خدا برگرده این یه هر که در دنیا در جام به دست ورده رو یواشواش بگذاره و سب وقبال بشه رو برگرده همونطور که سری اروج سری سوید سری پرواز انسان برای پرواز کردن هیچ هیچی نداشته باشه با سبکبال باشه اگر یه سنگ رو به بال پرندهی ببندی نمیتونه پرواز کنه ولی در سهر سعود بشر هی بار کرده هی جمع و کرده و این جمع واری کرده و هی سنگی رو سنگیتر شده روی زمین نشسته حالا برای رجعت بایستی اینها رو باز, باز کن از خودت مرحل اول ما گفتیم نظر ما همون قلم روی امروی معروفه فاز قروج و سعودم هم قلم روی نهی ازمون کرد این همون مستاقه انا الله و انا اله راجعینه یعنی اینه ما از خداییم اینه از خدا جدا شدیم ام اومدیم به زمین اینه اله راجعون اینه حالا باز میگردیم این سیر عروج یا سعوده که به نظر من سیر از منکره این همون چیزهایی که معروف بود و بشر کسب کرد حالا یا باش باش باستی اونها رو انکار کنه و از خودش بندازه تا باز کرده این درزاز و نفس بشر این نزول عروج رخ داده اینه معنایی در حرکت و تکامل جوهری انسانی این نصول لبور بود و اگر این حضار فیزیکی بشهر از آسمون سراخ نشده افتاده باشه روی زمین حالا خود برواز بگرده این یک معنای روحانی و حرکت جوهری هست به بیان دیگر ما در صحبت قبل من گفتیم که از یک لاحظ این همون مفهوم تقوا و تقربه تقوا یعنی پرهیز و ترسی از خدا یعنی دور شدن از خدا این سیر نزوله تقربه این این حالا بازگشت بندن شدن به خدا اون با سیر نزول رو عزیلات میشه گفت سیر کلی تقواست همان سیر با معروفه و سیر اروج همان سیر نهی ازمون کر هست و سیر تقرب ایلالله است که انسان باستی سب بال باشد بشه تاریخ رو به نظر ما میشه کلی از آقاستا میشه به این دو محضه کلی تق البته این واضحه که وقتی میگیم مرحله اول تاریخ، مرحله امری به معروف بوده، مرحله اکتسابات بوده، کسب کردن ها بوده، این کسب کردن ها چه دنیایی بوده، چه علمی بوده، چه فندی بوده، چه اخلاقی بوده، چه قانونی بوده، چه سیاسی بوده، چه بوده این ها بوده، ببین همه اینها مجموعاً این اکتساباته. امری به معروف که یعنی نیاز که آقا این معروف ها رو کسب کنید؟ بیاموزید در همون دوره اورب معروف که فاز اول تاریخ است بی معنا نیست که نیازمند کاری هم در کار نبوده ولی وجه غالب امر به بوده هم تو در فاز دوم تاریخ وقتی میگیم فاز نیازمند کاری بی معنا نیست که امر عمر حضور نداشته نداره بلکه وجه مسلط حاکمیت با نیازمند کاری است تو میگیم قلم رو که میگیم مرد از تاریخ وجود داره رو خب عمر هر کسی بر روی زمین هم تاریخش دیگه. حالال رو فرگر کسی همون همشه چه پنجاه سال صد ساعت چقدر؟ خدا اقل رو امر هم این دو بخشخ میشه دید نیمه اول عمر که کودکی و جوانیست نیمه دومش دو که کمال رو پریست در نیمه اول کودکون او جوان چه می کنه؟ همش داره کسب میکنه؟ همش داره کسب میکنه و همش داره به سرویس داده میشه و او یک مصرف کننده است هی خورنده است به دست آورندست و هم کسب به آموزش میکنه که میاد میفهمه زبان یاد میگیره آموزشا فن اخلاق قانون اینها رو یکس ای میکنه شما به معرفیش داده میشه و می به دست میره به دست میاد ها ولی در نیمه دوم که سیر کمال و پیری هست آه؟ یا ها یواشواش رو اتوماتیک از دست میده تا به مرک برسه فاز اول دیگه میشه گفت فاز سیر نزولشه سیر دنیویشه فاز دوم سیر اوجشه اون که کم کم باید آمد بشه باید موردن و تقرب ایلالله بره به سمت خدا یه هاش با سبک اقبال بشه دیگه همینطور این در نیمی دوبه امرش هم حتی قریب درسن هم خیلی چیزا ازش میفته بسیاری از حوثاش ازش میفته بسیاری از قرائز درش کاهل میشه یا نابود میشه درسته بسیاری از آروزگی حالی دیگه از دست میده سباک بالاتر میشه. بسیاری از آموز رو که کست کرده بوده رو بناش بیاردش میشه. بسیاری از باورها در رشد میره ببین هی سباک سباک سباک تر میشه. این بزیاری واقعیت ای توری فلسفه جدیه نیست. عمر هر کسی هم به عنوان تاریخ فرد هر کسی هم شامل حال این دو مرحله میشه. به نظر ما با ظهور اسلام که آخر زمان آغاز شده همونطور که دین اسلام دین آخر زمانه و محمد صلی هم پیامبر آخر زمان هست و قرآن هم کتاب آخر زمان بشریت آخر زمان هست در واقع با حضور اسلام بشریت وارد فاز دوم تاریخ یا قرص اوج میشه فیل نفسه که فی ذاته این اوج آغاز میشه ببین همه این اصبات به سرکت جوهریست انها که آباتر و بیدارستر و عارفتر بودن خب همون اوائل این رجعت الالله رو شروع کردن برای همینه که دین اسلام اون هسته مرکزی دین اسلام قلمرو عرفان اسلامی قلمرو روی حق قلمرو قلم زهد و تقوی مهزه که امامان ما اصفش هستند و علی کاملترین نمونه شد برای همین از که هشتار که رشته های بقای دنیا پاره شد یعنی چی؟ یعنی دنیا عدد دنیا دیگه نمیتوند در وضعیت دابنند بایدید ول پاره شده بس شما دیگه ول کنید و برگردید کولوار بر بندید به سوی خدا دیگه جای ماندن نیست زیرا از دنیا جوسم سم و دیگه باقی نمونده این یک خطبه ایستر نه شد بلاخر ولی خب بشر همیشه از انبیا و اولیا و امامان رو پیشوهان خودش آدمی بشر تره خب بشر میگه بعد از 1400 سال امروزه دیگه واقعاً به جبر مجبور هر انصری که برداشته باشه باشه بذاره دیگه. ارزشش داره میوفته. اگه از یه لحاظ این عصر عصر نیهیلیسمه. اوج از ایدئولوژی‌ها و فلسفیا آرمان آرمان‌ها و معانی بود انسان احساس می‌کرد که دیگه کل عالم مسیر داره فتح می‌کنه دیگه داره به جاودانگی و خوشبختی ابدی میره و این واقعیت است که همه چیز پوچ شده این نیهیلیسم این بازرخ جهانی که در عالم روی فرهم دانش و اخلاق و همه چیز آمده این همون پایه‌شدن اشتباهی باقای رو دنیاست که انسان با است دیگه به زور این‌ها رو خودش نبنده با و برگرده و سری دل ما این روزه باستی بگیم که اللازم معرفت باطنی و حرکت جوهری 1400 ساله که ما در قدم حاکمیت نهی ازمون کرد و سیر اروج قرار داریم یعنی در قدم چه باید کردی قرار نداریم در قدم چه نباید کرد قرار داریم بشر حال تجربه کرده، مخصوصا در سر اخیر دوران مدرنیزم و شبوبایی تکنولوژی ها بشر رو جبرن رسونده به این عمر که از خواهی ساکی باقا اون چه نباید کرد؟ چون چه باید کرد رو دیگه تجربه کرده؟ ما در قدم روی چه نباید کرد قرار دارم؟ برا همین در قدم روی تجربه بشری ما میبینیم واقعا امروز وقتی مثلا یک بیمار میره پیش پزشک خب میگه الان خودش میگه مثلا به پزشک میگه که مثلا من دل درد دارم مثلا فلان جام درد میکنه خب از پزشک انتظار نداره تبر که نفس جاهلانه خودش که پزشک پزشک بگه این کارو نکن اون کارو نکن اینو نهو اون نخور. نخور میگه نخیر خیر هر چی که دارم میخورم و هر کار که دارم میکنم بکنم تو هم حالا یه چیزی بذار روش تا اون رو هم بکنم تا عذاب ها و بدبختی‌های آن کار را که دارم میکونم خودسا بکنم برای همین پزشکی جایی تقدر پزشکی تخدیرات و مسکنها هستش هیچ چیز رو درمان نمیکنه فقط درس ها و عذاب ها رو به طور موقعتا تسکیم و اون بیماری ها فرصه بدان میکنه کنه هیلی شئیده همی ایختر بشه و تقدیل به بیماری هایی لعلاشتر بشه خود همین ترجم پزشکی در همه از دیگه هم همین دوره به ما نشون می که برای همین یک پزشک وقتی به یه مریض میگه آقا فلان چیز رو نخور اون مریض میگه آقا این پیزش نمیفهمه احمقه نخور نیجی اون واخر یک میزگرد پیزشکی بود در همون تلویزیون کشور خودمون ادهی از پیزشکا و اساتید بسیار سرشناس سرشن بس باشتن بحث میکردن در مورد بیماری‌ها و در مورد مسئولی پزشکی مدرن که یکی از این اساتید بسیار مشهور مدعی بود که اصلا واقعا رژیم غذایی بزرگترین اهانت به علم و انسانیته یعنی شو اصلا این رژیم درمانی اصلا واقعا یک جنون و یک هموقت و اهانتی به کیت مقدس علم و انسانیته درخیر ایمان است که بگی آقا هر چی میخوای بخور حتی اگه میخواد بخور هر, هر کاری میخوای بکن ولی با این من دور ماجرا میکنم این که قیاسی مسالی اند مسال اقتصادی مسساائل سیاسی گم و سای فرهنی پوچی ها و تباهکاری ها به ذکاری ها بی ها جنون و جنایت ها. واقعا به نظرت کسی میادگه که آقاون نکنیم کار رو. همه میگن آقاژون جوامه این کاری داره میکن بکنن ما یک برنامه یک پروژه پنج ساله در ساله پنج ساله درست کنیم تا این ازذا و بختی اون و و جنون و جنایت‌ها شاید کاهش بده کنه و ما در عمل ببینیم که نظر کاهیش بدا نمی بلکه دریده تر وقیتر و, و ایدولوژیکی تر میشه خود همین تجربه در همه زمین ها به ما نشونیده که ما با بایستی دست از چه باید کرد ورداریم و از چه باید کرد توبه کنیم و اندکی بیندیشیم که حالا چه نباید کرد ببینید خودی توبه یعنی چی؟ یعنی دست کشیدن از یک سری از کرده ها درسته؟ یعنی دست کشیدن دیگه توبه به این منانیست که من چه کاری بکنم؟ توبه یعنی من چه کارهایی رو دیگه نباید اصلی بکنم؟ ببینید ما در صحبت قبلی هم در تنوان آخر زمان نشون دادیم که ما در دوران قیامت پنجه هزار ساله قرار داریم دوران قیامت پنجه هزار ساله بروزه نهان نفس انسان در قلمرو روی و تکنولوژی قلم ظهور ظلمت در نفس اماره است قلم ظهور کفرها و جهلها و جنونها است انسان به فیل در میاد تماما کفر و جهل و جنون و بدبختی و عذاب و, و طبق نقل قرآن در چه این روزی انسان ها با که میبینند تصیح کنند که این از جهل و جنون خودشون بوده نگن از دیگران بوده و توبه کنند اول تصدیق کنند که این از خودشونه و بعد توبه کنند این دست بکشند پنابراین از یک ما وقتی میگیم ما این در قدم روی چه کغ قرار داریم یعنی در قدم روی توبه آخرازمانی قرار دار داریم ما در در حضور خدا قرار داریم قیامت قرصه ظهور تدریجی خدا تا شام قیامت تا آشکاری جماعی خدا و مقام لغاولا در حضور خدا باستید دست کشید از خیلی از کارها از دنیا باستید دست کشید به مفهوم کلی تا توبه کرد و این مطلب نیز پروازهه که از منکر در نخستین گامش در واجبترین مرحلهش باز ایستادن ما در سخنان عیمه و مخصوصا سخنان علی اسلام چقدر این واجه بازی ایستادن رو داریم که این مردان بازی استید دره هم کنید این یعنی از این سقوط آزاد بازی استید بیستید و پشت سر رو نگاه کنید و پیش رو نگاه کنید به, این به کجا میدارید در واقع اگر سوال بشه که آخرین سخن و آخرین معنا از قلم رو به چه باید کرد که چیزیه همین امر باز ایستادن این باز ایستادن جبران داره رخ میده این نای از به جبر هم داره رخ میده این عذاب ها این دبابم ها، همی ها بیماری ها فشار ها بلان ها جنون ها و هراس های جنون آورد همین ها اعضا و جواره و حواس انسان رو از خیلی از کردها ساقط می‌کنند از فرط عذاب انسان ساقط میشه به جبر پس بهتره که انسان به اختیار و بر اساس معرفت قبل از اینکه هلاک بشه دست بکشه و باز توقف کنه نوابرین این اقدام رو به امر معروف و نهی از منکر گفتیم دو محل از تاریخه واضی لازم ما می‌دونیم که تمام انبیا در معرفت اسلامی ما داریم تمام انبیا فقط برای امر به معروف و نهی از منکر تمام دین همین ما وقتی همه بر مدار این همه قرار داره نوابرین باز طبیعیه که لازمه معرفت دینی ما بتونیم کل تاریخ بشر رو نیس ما اساس عمل معلوم بنای از منکر درک کنیم این نیازمونکر واقعی شده در صورت یک واقعه ببینیم ما بگیم دیناله دین واقع قرآن میگه دین آن واقعه است یعنی هم صورت امر و عمل معلوم بنای از منکرش عمل میکنه انسان عاقل و مؤمن و خردمند درک میکنه و انتخاب میکنه و انسان اجوز و کافر جبران سقوط میشه این نریازمونکر که ما میگیم در قلم روی احاوته و سلطه مطلقه نریازمونکر ما الان قرار داریم یعنی این داره رخ میده به صورت ها رو میده اگر ما خود به انتخاب دست از خیلی از کردارهای منکرانه بر نداریم از فرط عذاب این چیز رخ میده قرار مثلا من فالان چیز رو نخورم خوب وقتی انکار میکنم و میخورم رنجور میشم تا جایی که دیگه نمیتونم اون رو بخورم ببینید که میخورم دسار زرچ، عذاب و درد میشم ببینید این جبران رو خوب ولی این هیچ خیلی برای انسان نداره رو به جبر با قول در رسول اکسام قلم روی دوزخ و عذاب هست این نکته دیگه هم که بسیار مهمه وقتی ما میگیم که اصر ایدولوژی های مدرن به پایان رسیده. منظور ایدولوژی های آرمان شهری و مدینه های فازله هستش خود این کلمه ایدولوژی که از فریبنده ترین و محصده ترین ی بوده که بادیچه دست بسیاری از روشنگ فکران بوده و هم زمه هست دواب از تا ایدولوژی هم تنان داره یک دلیلش حاصل جهنه درباره خود این واژه است. ببینید ایدولوژی یک لغتیست، هروپایی، ایدولوژی، یعنی اید شناسی یکی از نخستین کسانی که این لغت و واژه ایده رو بکار برده افلاتونه ایده افلاتونی برای همین ایده رو منصوب میکنن به افلاتون افلاتون ایده رو کاملاً تعریف کرده ایده میگه هر ایده در انسان مسئله تجلیلی یک حقیقت جهانی و متافیزیکی است ده ایک مسل قلب مسل هاست انسان از طرق این ایده ها به اون حقیقت جاودانه، و لایزال متافیزیکی و الهی دست پیدا می و ایدولوژی به این مناس شاخت این مسل ها به نیت رسیدن به خزاین متافیزیکی و غیبی این مسل ها و ایده ها. بلکه ایدئولوژی هایی که داریم درصغار اخری مصرب بودن، واقعین بودن، ما به میگسن رفتی به همین معنی نداشته. کدی این لغت تا چند دیبه غلط به عنوان بازی به کار گرفته شده. در واقع باستی این ایدئولوژی مثل سوسیالیسم، لیبرالیسم، دموکراتیسم و یک اینتسناسیتیسم و دیگر این ایدئولوژی ها اینا در حقیقت ایدئولوژی نیستن اینا، نبودن. در واقع باستی که اینا اوتوپیاولوژی بودن. یعنی آرزوشناسی و آرمان شناسی بودن. نه ایده شناسی با مفهوم فلسفی این لغت این آرزو شناسی بودند آرمان شناسی بودن یعنی اده از فلاسفه و متفکران اومدن آرزوها و آرمانهای نفسانی بشر رو ملاق قرار دادند و بر آن اساس برای اینکه انسان به این آرزوهاش در این دنیا برسه و این آرزویهاش رو واقعیت ببخشه را را اقتصادی سیاسی یم فکری فرهنگی را دادن که از جمله انقلابات یکی از این را ها بوده تا انسان به آرزوهای دنیایی خودش برسه، تا انسان به اتوبیاهای ها برسه، به آرمان های خودش برسه، به بهشت های خیالی خودش برسه، به حوث های خودش برسه در واقع. در واقع باز که این ایدئولوژی نبودن، ایدئولوژی نبودن، هواستولوژی بودن، هواستشناسی بودن، دنیا بودن که سعی میکردن خودشون رو طبیعی فقط به فلسفه بودند. برای همین که هیچ کدوم از این فلسفه‌ها واقعا به مفهوم واقعیش دارای هیچ فلسفه اصولی نیستند. ها و سوفسطایی‌غری‌های فلسفی است. هیچ فلسفه به مفهوم واقعی کلمه را در خودش ندارند. فلسفه به مفهوم حقیقت و عشق به حریت در این ایدئولوژی‌ها واقعاً جایی نداره. عشق به حقیقت در این ایدئولوژی‌هایی که در این قرن شده وجود داشته، هرگز عشق به هوسلانی عشق به رفاه بیشتر، عشق به سلطهی برتر و از این جور مقولات بوده. تمام عشق‌های حواسی و هوسناک بوده، نه عشق برکات فلسفه، نه لغت فلسفی، یعنی عشق به الهیات. پس اینا حتا فلسفه هم نبودن. باز ما واسهتون میگم منظورم از لغت ایدئولوژی چیه دقیقاً؟ پس اگه میگین ما میگیم اصل این رژیممون شده، پایان قرن 20 پایان ایدئولوژی بود، یعنی پایان این آرمان‌شهرها و هوس‌شناسی‌ها بود. ایدئولوژی مفهوم درسته کلمش از این ایدئولوژی نبودن در حقیقت این بست در واقع میشه گفت ایدئولوژی مفهوم واقعی کلمه ممکن است که انسان ایده های خودش رو اون حقایق باطنی خودش رو جستجو کنه و بشناسه از این دیدگاه ایدئولوژی ایده اگر سمبل و مثال های روحی و روانی انسان هستند بنابراین ایدئولوژی تماماً خودشناسی است انسان بازی در درون خودش اینها را ردیابی کنه و بشناسه و مستقای بیرونیش رو کشف کنه بعد در واقع میشه کنه مفهوم باقیه یکدمه همان معرفت نفس خودشناسیه همونطور که همون فلسفه یونانی در آغاز خودش در حکمت الهات دیگه اصفانی مثل اکزونفانس، مثل سقرات مثل جورجیاس و دیگران بنیانگذارش بودن که همه ایناور افتادند، اینها در واقع با انیان ایدولوژی بودند با مفهوم معرفت نفس برای همین بود سقرات متاقد بود که فلسفه چیزی جز معرفت نفس نیست هر سوچه که از معرفت نفس بر فلسفه بشه فلسفه نیست غیر فلسفه است رو کشتن و بعد تنها چیزی در فلسفه دیگه باقی نمون معرفت نفس بود و معرفت نفس با قتل سقرات از بطن فلسفه بر و از فلسفه توش شاه‌های توخالی و فریبنده چی بکنم؟ بعد اون ایدولوژی هایی که شد به این ایدولوژی که ازایی که توند قرن باش باج بودیم. که در واقع که ایدولوژی نبود، فقط اسمش ایدولوژی بود. محتواش، هوا سبازی، نفس پرستی، آرزو خرستی و دنیا خرستی باشند بود. آره؟ این ایدولوژی های در واقع وارونه، و این ایدولوژی های در واقع. این رو بسته به ایدولوژی های بودن. این دیوژیسم‌ها سوسیالیسم‌ها اینا های ضد ایدولوژی بودن ولی اینا فقط در جستجوی ارزای نفس اماره انسان بودن و بله به همت تکنولوژی تونستن به بسیاری از آرزوهای دینی بشر پاسخ بدن و به بسیاری از این آرمان‌ها آرزوهای خودش که تا خوابش نمیدید نمی‌دید رسیده حتی به بسیار بیشتر از آنچه که تصور می‌کردو رسیده ولی حالا که رسیده و فکر میکرد این خواستا اگر برابرده بشه او به هشت خودش میرسه میبینه که این بهشت به جهنم از آب در حالا از چه چیزی بایستی تو بکنه ترک کنه, کنه؟ آه؟ از این بهشتی به که جهنم از آب در آمده به واسطه جهلش بس ما میدیم عرصه چه نبایت کرده ما در قلم روی نهی از مکن را داریم این منکر چیه این تمدن مدرن این مدرنیسم، تکنولوژیزم و بودپرستی هایی هست که قرار بود بهش باشه ولی جهنم شده. بایستی ما دست بشوریم از این جهنم. از این جهنم بایستی ما توبه کنیم. بازی از مصرف کاله جهنمی و آرزوهای جهنمی و بوتهای جهنمی بازی استیم.